درود و سلام به یاران همیشگی رادیو البورز عناوین خبری مربوط به پناهندگی در هفته که گذشت رو به سم شما میرسونم پلیس فدرال آلمان میگوید پناهجویان رد شده حتی اگر مدارک شناسا شناسایی نداشته باشند اخراج میشوند پناهجویان رد شده در آلمان حتی بدون مدرک شناسایی از کشور مبدعشان هم بازگشت داده خواهند شد پیش از این نبود اوراق هویت یکی از موانع اخراج به موقع پناچوان قرار می گرفت رئیس پلیس فدرال آلمان می گوید آن اده پناچوانی که واجد شرایط پذیرش در این کشور شناخته نمی شوند را می توان بدون اوراق اضافی مورد نیاز هم به کشورهایشان بازگشت داد رومان در گفتگو با رسانه آلمانی جان شیلفینگ گفت که در قوانین بین بین‌المللی هیچ الزامی دیده نمی شود که بازگشت دادن پناهجویان پذیرفته نشده را به اوراق جایگزین پاسپورت و یا مدرک دیگر برای انجام سفر وابسته دانست. او همچنین گفت پیش از این کافی بود که جواز سفر یعنی برگه هویت از سوی یکی از ملت‌ها یا اعضای اتحادیه اروپا صادر گردد، در حالی است که این عمل را دولت فدرال خود می‌تواند انجام دهد. رئیس پلیس فدرال همچنین بیان داشت که نبود اوراق معتبر هویت افراد سبب نمی شود تا اخراج این به موقع پناهجویان رد شود و یا به تعویق بیفتد رومان همچنین خواستار اصلاحات قانونی فدرال در خصوص اخراج پناهجویان رد شده گردید در حال حاضر اداره فدرال در امور مهاجرت و پناهندگان روی آن تصمیم میگیرد که آیا یک فرد حق پناهندگی را به دست بیاورد یا خیر دستوری که فرد این حق را به دست نیاورد صلاحیت به اداره امور اتباع خارجی محلی و پلیس ایالت مربوطه ارجاع می شود به همین دلیل پلیس فدرال باید انیس آمری مهاجم حمله در برین را پس از گرفتن به مقامات ایالتی تحویل میداد رومان در پیوند به این موضوع اشاره کرد در صورتی که این روند ضروری نمی بود سازمان جهانی مهاجرت دیروز سهشنبه در یک گزارش اعلام کرد که این سازمان در سال گذشته 21120 پناهجو را از کشور ترکیه به سه مقصد امریکا، کانادا و کشورهای اروپایی منتقل کرده است. سه مقصد عمده انتقال پناهجویان از ترکیه ایالات متحده با 8500 پناهجو کانادا با هفت هزار و کشور اروپایی چهار هزار و پناچو می باشد با همکاری مالی سازمان جهانی مهاجرت کمیساریای عالی پناهندگان و دولت ترکیه صورت گرفته است هفتاد و سه درصد این پناچوان را زنها و کودکان تشکیل می دهند ملیت بیشتر این پناچوان منتقه شده به این سه مقصد سوری ها می باشند که شست و دو درصد از این پناچوان می باشند ترکیه نزدیک به شش سال است که میزبان پناهجویان سوری می باشد که اخیرا تعداد آنها به سه میلیون و یکصد هزار نفر میرسد. انفجار در اردوگاه آوارگان سوری در مرز با مرز با اردن چهار کشته بر جای گذاشت. گمان میرود منشأ این حادثه منفجر شدن بمبیت جاسازی شده در یک خودرو باشد به گفته یکی از ساکنان اردوگاه رکبان. دستکم کم 12 نفر بر اثر این انفجار زخمی شدند. مجروحان این انفجار به درمانگاهی در اردون انتقال یافتند. سازمان ملل متحد شمار ساکنان اردوگاه رکبان را حدود 85 هزار نفر اعلام کرده است بر اساس آمار کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیمی از 16 میلیون پناهجوی جهان را کودکان تشکیل می دهند. شش میلیون کودک پناهجو در سن تحصیل در مقطع ابتدایی و متوسطه هستند، اما تعداد 22 درصد از آنها تا مقطع متوسطه تحصیل می کنند. اردوگاه کاکاما در کنیا یکی از بزرگترین اردوگاه پناهجویان در کاکاما، شهری در شمال غربی کنیا واقع شده است. این کم میزبان نزدیک به 162 هزار نفر است که بیشتر آنها از سودان جنوبی و سومالی آمدهاند همچنین کمپ با داشتن چهارده هزار کودک بی‌سرپرست یکی از رکورددارترین در میان های پناهجویان در جهان است دو دولت آلمان و اتریش خواستار افزایش گس و گسترش های کنترل مرزی بین دو کشور هستند یکی از مرزهای ورودی مهاجران که از راه زمینی وارد اتریش میشوند کشور اسلوواکیس به همین دلیل وزیر کشور اتریش خواستار کنترل‌های بیشتر مرزی خصوصاً در قطارهای مسافربری مرزی شده است. وزیر دفاع اتریش می‌گوید ایده من این است که باید به پناهجوییانی که بیشتر جواب نگرفتند کمک کرد و آنها را دوباره گرد هم آورد و به آنها برای خروج از کشور های لازم را بدهیم. 8 فوریه کشور اتریش میزبان نشست بین وزرای دفاع کشورهای اروپای مرکزی است و محور اصلی این نشست موضوع کنترل مرزها و تعامل بین این کشورهاست. تنها در سال 2015 بیش از 90 هزار درخواست پناهندگی در اتریش ثبت شده است اغلب این پناهجویان را مهاجران افغان و سوری تشکیل میدن از زمانی که های بیشتری مرزی بین دولت اتریش و آمده میزان درخواست پناندگی در سال 2016 کاهش یافته است و به عدد 43 هزار نفر در سال رسیده است کودکان پناخچو گرفتار سرمایه بلگراد در میان هزاران مهاجری که در بلگراد پایتخت سروستان گرفتار شدهاند، کودکان بی سربرست. حتی با سن 8 سال هم هستند آنها در سرمایه زیر صفر در یک انبار متروک کنار ایسکا راهن زندگی می کنند. سروسان جایی نیست که حتی از مهاجران با ورود به اتحادی اروپا آرزوی رسیدن به آنجا را دارند. و همچنین سرگردان بودن شماری از پناهجویان در ایسکاهای راهن بروکسل پس از خراب شدن کمپ کاله فرانسه. صدها پناهجو آفریقای تبار در این ایسکاها بی‌هدف پرسه می زنن. این خبر دوباره از آلمان، دولت آلمان روز سه‌شنبه 24 ژانویه برای دومین بار هواپیمای حامل پناهجویان افغان را که مورد پناهندگی آنها پذیرفته نشده است به افغانستان بازگرداند. بسیاری از خبرنگارها اعلام کرده بودند که شمار پناهجوانه بودت شده 26 نم بود اما وزارت کشور آلمان این رقم را 25 نفر اعلام کرد. این امر در چهارچوب توافق ماه اکتبر میان مقامهای افغانستان و اتحادیه اروپا انجام شده است. در ماه اکتبر و در جریان کنفرانس بینالمللی کمک به افغانستان که در بروکسل برگزار شد دولت افغانستان و اتحادی اروپا توافق کردند که در اعضای ادامه کمکها اروپا به این کشور شماری از پناهجویان به مناطق امن افغانستان بازگردانده شوند این موافقت با اعتراض گسترده پناهجویان افغان در شهرهای مختلف کشورهای اروپای بویژه ویژه آلمان و همچنین سازمان عرف بینالملل مواجه شده است به گزارش خبرگزاری فرانسه حدود 80 مامور پلیس آلمانی 25 و پنج افغان را در پرواز به کابل همراهی میکرد بسیاری از این افراد باآمداد دوشنبه در آلمان بازداشت شده و با یک ساک کوچک به کشور خود بازگردانده شدند کمیسیون اروپا مافیات پنج کشور آلمان اتریش دانمارک و سوئد و نروژ را از اجرای پیمان شنگن به مدت سه ماه دیگر تمدید کرد این کشورها دو سال است که با هدف ممانعت از ورود مهاجران و پناهجویان به خاک خود پیمان شنگن را اجرا نمی کنند کمیسر مهاجرت و امور داخلی درباره علت این تصمیم گفت نباید فراموش کرد که در حال حاضر شست هزار نفر در یونان هستند کسانی که پشت درهای مسیر بالکان ماندهاند برنامه اسکان پناهجویان هم موفقت آمیز نبوده است با یک مشکل مشخص روبرو هستیم و تصمیمات ما برای حل این مشکل است پیشنهادهای امروز هم برای حل این مشکل میباشد از سوی دیگر برخی از نمایندگان پارلمان اروپا مخالف ادامه کنترل‌های مرزی هستند و این کنترل‌ها را لحاظ اقتصادی به زیان کشورهای حوزه شنگن میدانند تانیا فایون نماینده اسلوونیایی پارلمان اروپا در این زمینه گفت پیام بدی برای شهروندان است از لحاظ اقتصادی آور است و به نوعی تناقض رفتار کمیسیون را نشان میدهد می‌گویند می‌خواهیم هر چه زودتر پیمان شنگن که یکی از بزرگترین دستاوردهای اتحادی اروپا کاملا کاملاً اجرا شود ولی در عمل کار دیگری انجام می‌دهند کمیسیون اروپا معتقد است امکان دارد پس از پایان فصل سرما موج تازی از پناهجویان راهی اروپا شوند و خبری جنجالی که گفته شده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به زودی با صدور دستوری هر گونه ویزا برای شهروندان ایران و چند کشور دیگر را به مدت سی روز متوقف می کند و اما این پیشنویس دستور امر اجرایی چه می این پیشنویس صدور هر گونه ویزا برای شهروندان ایران، عراق، سوریه، سودان، لیبی و یمن را به مدت سی روز متوقف می کند در دستور دستورعمل کاخ سفید از وزارت امنیت ملی آمریکا و نهادی اطلاعاتی میخواهد که از دولت‌های کشورهای مذکور در زمینه اعطای ویزا به شهروندان، آنها اطلاعات درخواست کنند و فهرستی از دولت‌هایی که همکاری نکردن را به کاخ سفید ارائه کنند. با توجه به این دستور، به نظر میرسد دولت ترامپ قصد دارد لغو احتمالی اعطای ویزای آمریکا به شهروندان کشورهایی که از نظر به همکاری نکردند را تمدید کند. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین میتواند اسامی کشورهای دیگری را به کاخ سفید بفرستد. محدودیت‌های اماندراج در پیشنویس شامل ویزاهای دیپلماتیک نمیشود و آخرین خبر، عملکرد بهتر سوئد و نروژ در همگرایی. آمار مؤسسه دارماک نشان از آن دارد که سوئد و نروژ در مشارکت مهاجران در بازار کار بسیار بهتر است و خیلی خیلی بهتر از دانمارک عمل کردن در این یک مطالعه مقایسه‌ای آمده از میان کسانی که از کشور بوسنی و به شمال اسکاندیناوی نقل مکان کردند، به ترتیب 71 و 73 درصد در سوئد و نروژ شاغل هستند. این روند برای ایرانیان هم تکرار شده. 63 درصد ایرانی ها در سوئد و 60 درصد در نروژ شاغل هستند. در که این رقم برای ایرانیان در درمای تنها و 47 درصد می باشد خندون، دلاتون شاد، تندرسیدون پایدار و صفرهاتان پرنان بدرو تا یک روز دیگر